بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيبوا من درسة الدرسية السورية يوسف عليه الصلاة والسلام أيها أشتار فارمدي الله جل شأنه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فررتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا ما يئسوا دن نوميد شدن از اینکه برادر یوسف رو باز و بر بگردونن خلصونجی یه گوشه ایران انتخاب کردن گرفتن برای مشورت کردن قال کبیرهم در اون جمع اون کسی که با صحبت بکنه باید بزرگتر باشه حق اولویت در جمع در شهر اول با بزرگتره در مسائل اجتماعی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می کنه در جمع اگر کسی وارد شد اول از بزرگتر بودت شروع بکنه بعد از دست راست اون بزرگتر چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم مگل کبرا کبرا اول بزرگتر حالا چه در مجلسی باشه چه در ورود منزلی مسجدی یا هر جایی حق و با بزرگتره در پذیرایی اول بزرگتره اون حرف میزنه اینجا تو جمعه اولین کسی حرف میزنه برادر بزرگتر کبی هم. چون اگر بخواد کوچکتر صحبت بکنه بیاد میشه به میشه. این ادب و احترام آداب و معاشرت این آداب و معاشرت ها را باید ما یاد بگیریم. این این مجرد یک. تصویر و قصه نیست مثلا الله بخواد الله جل شانو مثلا از یک رویدادی به ما اطلاع بده اونجینی چیزی رخ داده نه آداب معاشرته این تربیت نبوی پیامبر اینطوری یعقوب علیه السلام اینجوری فرزندانشو تربیت کرده از قبل اسحاق از قبل ابراهیم و این آداب و رسومی این آداب که باید ما یاد بگیریم اول بزرگتر هر جا هست اول بزرگتر حتی پشت سر امام اول بزرگتر لکن منکم اولو العلم و النها اهل علم اونایی که سنی اششون رفته بزرگترن از لحاظ سنی این قاعده شرعی ها گوشه و کنارن یا صف بعدین بزرگترا اولویت دارن در هر مجلس این نماز یکیشون اولو النها اونایی که سنی اششون رفته بزرگن این احترام ها باید حفظ بشه تقدیرات رو حفظ بشه بله دست راست ما داریم اون چیزی که به خودت برمیگرده در تهارتت در شنو کردن سر در اسلاح کردن سر کان النبی صلی الله عليه و سلم یعجیبه تیم نوی طهوری و تنعولی در دنبی پوشی در شونه دنش سرش در ووزوگرفتنش گرفتنش الله صلی دوست داشت با دست راست دست راست این کار انجام می‌دهد چنانچه امروز من عاشورا دیانه هم می‌گوید و فی شانی کل در اون شؤنی که قرار بر به اون عبادت مثً وارد شدن مسجد پر خب یک استثناء داریم همه جا دست راست نیست از مسجد می‌خوی بری بیرون پای چپه بعد پای راست آخرین پای بعد پای راست باشه دنبای بیرون وارد نمی‌توان می‌پوشی آب اول چپ بعد آخر راسته دستشوی هست با پای چند میریم ولی با پای راست بیرون میاییم اینا آدابه چنانچه یک یهودی میاد نزد زمانون خطاب میگه که رضی الله عنه میگه که همه چیز دین یعنی به شما یاد داده گفته همه چیز داره گفت بله حتی آداب خلاب و آداب السنجار هم به من یاد داده اداب داره میری باید دیگه اللهم ان اعوذ بك من الخبث والخبائث میای بیرون میگه غفرانك این آدابه باید انسان یاد بگیره اینطوری نیست که مثلا اینا گفته بشه یا به رسول الله صلی گفته همینطوری نه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه برای شما در اساس علم و نیکیه این باید یاد بگیریم این آداب معاشرته و این آداب معاشرت رو اینجا الله باره من نقل می تو مجلس نشستن قال کبیر هم بزرگتر حرف میزنه زنه همیشه میگیم بچمون بچه من نشستن بزرگتر حرف می زنه تو حرف نزن باید یاد بگیره قال کبیر هم علم تعلم و ان اباكم قد اخرد عليكم موثقه وسیخه گرفته بود برادرشون میگن میتون پدرمون همون از خودمون نگرف که برادر یسوفین بنیامین بنیامی کالا گفته میشه برش بگردونیم و من قبل فراتون فیسوفین از قبل از دوم تعهد گرفته بود خلاف عهد کردید یوسف رو بردید و بر نگردندید خلاف خودشم شریک جمعه اقرار به کوتاهی اقرار به گناهه که من گفتم در مقابل معصیت باید اقرار باشه ما فتنه داریم مصیبت داریم و معصیت داریم در مقابل معصیت باید تو به اقرار به گ که ما اشتباه کردیم بس اینجا این برادر یاداوری میکنه و بقیه ما کوتاهی کردیم ما بودیم کوتاهی کردیم در عمر یوسف یوسف را از پدرمون گرفتیم خاطر اون حسادتمون قراره قراره به گناه ابراز پش ایمانیه اینجا حقوبت شده این برادرانه دستمون رفت به خاطر اون عقوبت اونجا بود اونجا یوسف رو ما درش گوتوی کردیم وقتی که بلا و مصیبت به انسان میاد سر این اون خالی نکنه دنبال بهونه نچرخه نگرده آه مقصر فلانیه مقصر اینه مقصر اون دنبال مقصر نگرده اول خودت اول به خودت بر بگر ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين همه تقصیرات از خودت ببین ناز الله ببین وقتی که مصیبت یادون از ناز خلق خدا خودت ببین من حتما کتاهی کردم اینچنین مصیبت شدم اینچنین دردی مبتلا شدم الله حتما حکمتی داره در این کار حسن زن با الله والله المستعم. این چیزی که یعقوب به من یاد بیده فصابرون جمین و اصل توبه هم هم که رسول الله صلی الله علیه و می فرمات الندم التوبه پش توبه است این که تو پشیمان بشی از اون کاری که انجام دادیم حسل تو اینه با گفتن استغفر الله یا اللهم مغفرلی اللهم عفو عنی طلبو آمرزشو بخشش بکنی از الله و تصمیم بگیری که دیگه دوباره به اون گناه برنگردیم حزم قاطعیت و این فرصتی که الله بهمون به داده در نمازام به خاطر همینه که بتونیم به خودمون بر بگردیم یک فرصتی باشه اون اشتباهات رو اصلاح بکنیم و تصمیم جدی بگیریم بر اصلاح خودمون و پشیمان بشیم ندامت کار اشتباهتو بهش اقرار بکنی و از الله اموزش بتروی فلان ابرحل ارض حتی ياذن لي ابي برادر بزرگترمیه من از اینجا تکون نمیخورم تا پدرم به اجازه نداده تکون نمیخورم برید پیش پدرمون بگید قضیه و ماجرات چی شده اگر به من اجازه داد پدرم تکون میخورم که یعقوب در دل این بچه‌اش گذاشته و حسابی که میبرین فرزند با وجود که بزرگتر از بقیه بچه‌ها این عقل و بختگی این فرزند میرسونه میگه تکون نمیخورم. عهد دادم و روی عهدم هم هستم که به هر طور که شده باید برادر رو بر بگردنم قویحکم الله و لیا اینکه الله خوب هم کنه خود الله حک بکنه یا وقتی بر پدر یا بالاخره یکطرریقی این مسئله فاصله بیا به از طرف خود الله الا بیا با نجات بنیامین هرچه که من اسم بینامین سعی میکنم که نار بخ مجبورم بیارم چون در تورات او مده دوست نندارن که اون چیزی که در کتاب اونا اون اومده ما اقراررش بکنیم چون در کتابی ما نیادده اگرگه ببین برادر ی کدوم برادر بزرگتره کوچیکترره و این برا کوچیکترره یک مسئله ای که اینجا میشه برداشت کرد در برادران یوسوف حسنین بزرگتره اینی که اونجاایی که یوسف ال سلام میگه که من به اون دوتا زندانی میگه میگه که من قومی را رها کردم که ایمان به آخرت ندارن اینی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرتی هم کافرون ما تفسیر سعدی کلمه کفر رو داشتیم در مقابل معصیت اینجا من میتوند در مقابل معصیت میاد گناه میاد اون گناهی که انسان انجام میده و از آخر آقبتش نمیترسه اگر حالا گفتیم اینجا اگر در این آیه مراد برادران یوسف باشه نه ملت سرزمین شام و دمشق و یا فلسطین و اینا خب اینجا او یحکم الله وليد بر این میده که اینها الله را باور داشتن قبول داشتن مشکلشون در ضعف ایمان بود در اون گناهی که مرتکب شده بودن که از حسادتشون بود پس اینها برادرای یسوف فرزندان یعقوب علیه السلام آدمای کافر و زنديق و نمیدن بدین و اینا نبودن که ما فکر بکنیم که اینا اصلا خدا را قبول نداشتن نه خدا را قبول داشتن ولی که اینها تابع هوا و خودشون شده بودن که منجر شده بود در این گناه معصیت بیفتن. خصوصا اینجا که طرف مقابلشون یک پیامبره یک پیامبری زن. یک پیامبری را از پیامبری دیگر جدا میکنن ظلم به یک پیامبری میکنن به خاطر همین یوسف میگه اینا اگر ایمان به روز داشتن اگر به خدا باور داشتن این کارا را نمیکرده. من من اینجوری ملتی را رها کردم به پیامبر الهی راه نمیکنن عجب جنسی این جنس بشر بشر همه همینطوریه شما وقتی که بنی اسرائیل میگید فکر نکنید که یهود فقط اینطوریه بنی اسرائیل هن. فقط اینطوریه اصل بشر همون گله و همون خاک و همون قاب همون فرق نمیکنه بیشتر ماهامی خصالتوی که در یهود هست ما داریم در بنی اسرائیل بوده ما داریم از بوخ، از از حسادت همه این ها در ما است. الا ما رحم ربک، ایلا ما رحمینی که اندکنند شماره کمی از ما شاید بتونن بر نفس خودشون غلبه بکنن و هو خیر الحاکم بهترین کسی که حکمی کنه الله. چه در حکم شرعی چه در حکم کونی چه در حکم کونی از افری ما بدون سبب نبوده بدون علت نبوده بدون شک الله در آن حکمی که کرده که کی کجا باشه چطور باشه چه زمانی باشه الله خیر الحاکمین الله خیر الحاکم همونطور که میگه الله قد خلقنا الانسان في احسن تقويم چهرهات بهترینه جسمت بهترینه حکمی که کرده الله که تو در چه زمانی کجا و چطور باشی چند فرزن فرزند چند تا همسر چند تا برادر خواهر الله خیر الحاکمین بدر امور کونی و چیزی که کونن الله نبشته یعنی در آفرینش نوشته در شرع الله خیر الحاکمین شرع دست دوز بدون شک قد کردنش بهترین حکمه هیچ حکمی مثلین نمیتونه موازی بشه از لحاظ اجرا و از لحاظ نتیجه نمیتونه مثل حکم الهی باشه زندان بنداز دوباره بیرون میاد میگه دوباره زندان میخوان نونم مف خورم دوباره همون کار ولی دستش قد کردی دیگه یک دستش قد شد دیگه به فکر دست ندیش شرع بزار زش بشه بزار عبرت بشه برای دیگران ولی با شرع اجرا بشه اگر هر بشه دیگه کسی جرأت نمی‌کنه که تعرضی بکنه به اموال دیگران ولكن هنا اقرار هذه الفرزنة يعقوب عليه السلام بحردون بحكم إلهي ما حكم كوني؟ و ما حكم شرعيش ما حكم شرعيش نازل بكونه بري يعقوب كباري بشه و حكم كونه كباردرش باردر كوشيكش آزاد بشه وهو خير الحاكمين الله هست كبهتن الحكم الله يكون. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم بريد نزد پدرتو فقولوا يا أبانا بيجيت أي پدر إن ابنك سرقه وما شهدنا إلا بما علمنا راست بگیدی اینجا دیگه اونجا دروغ گفتید برای یوسف اینجا دیگه برای این دروغ نگید راست میدونن که اونجا دروغ دادن نجات نیافتن پدرشون فهمید اینجا اگر دروغ بدن بازم کشف میشن نمیتونن چون اونجا رفتن مشورت کردن با خودشون خلاصونه نجیه رفتن یه گوشه مشورت بکنن که چیکار بکنن اینجا دیگه تصمیم گرفتن که رو راست باشن پدر بچه نگفت برادرمون نگفتن برادرمون گفتن ابنک هنوز اون جدایی تو دلشون هست بر اینکه این از زن دیگریه برادر تنیشون نیست نگفت برادر مرخونه سرق گفتن اب نکر بچه تو دوزی کرده هنوز اون بیادوی توشون هست هنوز اون حس ناتنیه که داشتن نسبت به یوسف و برادرش هنوز توشون هست این درد ها این مصیبت ها فرزندان ما بگن که ما از این همسریم اون بگه از اون همسر ما مادرمون غیر مادرمون بهتره این بگه مادرمون غیر مادر ما بهتره دایی های ما و خاله های ما بهترن اینم چه راه این قضیه رو درمان بکنه فکر نکنید که الله این کلمه رو اونجا گذاش از اون واقع نکبت بدون درس و عبرته. اینجا یک انحراف فکری انحراف اخلاقی دینی داره ما بازگو میکنه این جدایی جدایی بدیه همین جداییه سبب شد که هیسف را در چاه بندازن و این ماجره ها پیش بیاد این ابنک سرق دزدی کرده و ما شهدنه الا بما علمنا یعنی ما گواه نبودیم مگر به این چیزی که به ما گفته شده خب ندیدن که بنیامین دزدی کرده میگه دیدم با چشم خودشو و ما شهدنه ندیدن ولیکن چی؟ کن این گواهی که دارن میدن بر اساس اون علمی که الا بما علمنا اینچینین ماجرا شد ما دوزی رو ندیدیم ولیکن اون جامی که از آزوغه از وسایل بنیامین در اومده اونو بهش متلعیم دیدیم با چشم خودمون دوزی رو ندیدن گواه نبودن بر اون ماجرا ولیکن جامع رو دیدن توی وسایل ها و ما شهدن به بما علم نه این علم کجا پیش اومد وقتی که یوسف خودش اومد اول وسایل مال برادرش شروع کرد آخر مال برادرش بنیامین خب بعد از اینکه این قضیه این رو میگن که ما گواهه نمیتونیم باشیم مگر به اون چیزی که بهش متلع شدیم آگاه شدیم میگه ما ما كنا للغيب حافظين و ما كنا للغيب ما وقتی که تعهد دادیم ما نمیدونستی که قراره که دوزی بکنه که ما میدونیم که دوزی میخواد بکنه و ما كنا للغيب حافظين ما متلع بر غیب نبودیم خودم میدونیم ما که عالم غیب نیستیم پیغمبر هم نیستیم ما نمیدونیم سه که تعهد دادیم که بنیامین رو برمیخوام بگردونیم این دوزی میکنه و این قضیه ماجرا پیش اومد خب الان باید مدرک بیارم بر این که راست میگن مدرکشون چیه؟ واسعل التي کن فيها. برو از اون شهری که ما رفتیم میتونی بری تحقیق کنه بپرس تحقیق کن ما دروغ میگیم مثلا. ما اصلا دروغ میگیم تو خود برو تحقیق کن وصل القرية ما زره مشهري كده رافتن وصل القريه چرا گفت اینجا الله واسال القرية نقف اهل القرية خريكي روسا و شهر چطور ميگه كسي از شهر روسا و از درتیوار سوال میکنه از آدمش سوال میکنه چرا الله از کلمه قریه استفاده کرد الله در عبارته جوامع الکریم را استفاده میکنه کلماتی خلاصه چکیده و اونطوره که عرب استفاده میکره. ها مفصلی میکنه حالا بعضی مفسیری میاد میگن این مجاز بده نه چیزی نداریم که مثلا اینکه اینجا مثلا ما بگیم اینجا مجازی رخ داده چون مجاز یک کلمه حقیقیه حالا اختلافاتی که هست مثل شیر یا میشه مجاز بشه یعنی شیر داریم شیر لوله داریم شیر درنده داریم خب اصول اینه که شیر همون شیر درنده تو زه بیاد حالا بقیه با قرینه مشخص میشه معمولاً حالا این مثال زدم که تو زن هست هرچه که خیلی مخالفم با این قضیه که این کلمه شیر مجاز واقعه بشه باید قرینه باشه که دلالت بده که منظورمون شیر کدوم شیر گاوی یا شیر لوله است باید قرینه باشه حالا این تو بحث مجازی کلمه خب الان اینجا این کلمه و مشخصه چیه؟ اونا باید یه قرینه مثلا باید دنبال بگردیم مثلا یه قرینه‌ای که دلالت بده که غیر از این روستا و شهر معنای دیگری میده مثلا نه به معنی دیگیری هم میاد معنی دیگه این شهر و روستا چی میشه مثلا قريه چی میشه مثلا شیر مثلا گفتیم شیر اینو شیر گاو و شیر درنده معنای دیگری آیا قريه داره نه نداره اون باید ریشهش رو نگاه کنه ریشش از چیه از کجاست این ریشه ای کلمه قريه اصل قريه از قرا میاد به محله که آب جمع میشه نه محله تجمع جمع وقتی که الله میگه واسئل القرية از اون جمع بپرس قرية اسمی بر جمع که در اون شهر واقع شدن در اون جا هستن آیا اینجا الان به نظر شما مجاز واقع شده؟ مجازی هست؟ نه مجازی نیست چون قرية دلالت معنای دومی نداره یک کلمه دو تا معنا داشته باشه نه معنای دومی اینجا نیست این معنای ریشه لغوی خودشه اگر این جریان رو تونستیم هزو کنیم اگر این جریان رو تونستیم هزو کنیم خیلی از معزلات و مشکلات نسبت صفات الهی برمون میشه مثل استوای الله بر عرش که امادم بعضیا گفتن که ما نمیتونیم درک بکنیم که الله بر عرش بره و بالا باشه چون الله اگر آسمان ها را افریده و سپس بر برعش مسافی شده بر عرش رفته پس یه چیزی بوده از یک جای به جای دیگر تو زن خوشنت جسم کردن الله را بعد اومدن نقض کردن فرموده الله که نه نمیشه با توجه به ما نمیشه این چنین چیزی صورت بگیره اومدن گفته پس یک معناي دیگري استوابا داشته باشه دنبال چی بودن دنبال یه قرینه اي که این استوا غير از به معناي بالا رفتن باشه چون ما در قرآن کلمه استوا داریم سندار درباره نوح میگه اگر استویت آنت و ممّعك على الفلك وقتی که تو و همراهانت بر روی کشتی سوار شدید، قرار گرفتید. و سویت انت و من معك على الفلک. سوار یعنی چی کشتی دیگه؟ این چیه؟ قرار گرفتن بر روی چیزی بالا رفتن پس قرینه قرآنی هم دلالت بر چی میده که استوا به چه معنی باشه بالا رفتن خب الان این بنده‌ی خداها نتونسن این قضیه رو حل کنن چون در ذهن خودشون الله را تجسّم کردن که پس یه چیزی پایین باشه رفته باشه بالا اومدن گفتن نه پس یک معنی دیگه دی دنبال بگردیم گشتن گشتن گشتن تا یک نصرانی مسیحی پیدا کردن بیدینی پیدا کردن که گفته فعلا ما استوا بشر علی العراق اومدن یک بیت شری وردن از اختلال نامی که نه اعتباری داره نه خودش معتبره که نه اونجا اومده به معنی یه استیلا یعنی چیره شدن چقدر معنای زش سخن الهی رو عوض کردن گفتن استوا و عرش استوا گفتم استوا به معنی استیلا یعنی چیره شدن چیره شدن یعنی چی من بر شما چیره بشم درا رو ببندید دستگیرتون بکنم بر شما چیره بشم کسی تکون نخوره این چیرگی دیگه شما را در تصرف خودم در آوردم شما را در تصرف خودم در بیارم خب الان سال پیش میاد شما که میگید به معنی تصرف و چیرگی و استیلا هست قبل از اینکه الله استیلا داشته باشه بر اون خلق اونها مخلوقات همینطوری رها شده بودن خدایی نداشتن دست کسی دیگه بود الله اومد غصبش کرد از تصرف اونها در ورد در تصرف خودش قرار داد چه معنی بدی پیدا میکنه؟ شما فکر بزنید این حرف چقدر بد میشه وقتی که ما یک ای بدیم یک قرینه اشتباه، یک معنای اشتباه، اصلا اعتقاد و خراب میکنه حتی درباره الله ناگویند، یک معنای اشتباه، یک لغزش قلم، یک لغزش برداشت، یک فرار از ظاهر آیه با اون عقل قاصر سبب انشقاق و اختلاف بین مسلمان ها میشه و یک طایفه و گروهی به وجود میان به اسم محتذله. یک تفته جدافتاده میشن که همینا سبب میشه که مسلمان ها رو تکفیر بکنن و کلی جنگ و جدال میشه بر سر قضیه. پس اینجا الله با توجه ادبیات دا عرب داره با ما حرف میزنه و میگه حجتی که برادرهای یوسف فوردن چی بود برو اون شهر تحقیق کن ببین که ما راست میگیم یا نه این چیزی شده یا نه ما دروغ میگیم بل فرض دروغ ما شما برو تحقیق کن ببین اون جام اون کس از اون کاخ در وسائل های بود یا نه خب این یک قرینه بر این که ما راست بگیم قرینه دوم واسه ال قريه التي كنا فيها عیر چیه عیر اون قافله که باشم رفت کاروان التي اقبلنا فيها میتونن از اون اشخاصی که با ما بودن هم بگی که رفتن قافله که رفتیم اومدیم و انا لصادق و ما راست اینا قرینه هست بر راست ولی خب برای یعقوب علیه السلام سخته که اینجا باورشون بکنه هرچند اینجا قرینه هم بر صدقشون وردن اونجا قرینه که ورده بودن بر یوسف قرینه هم دروغ بود خون دروغی، پیراهن ساله. خلاف بعدشون ادله برهانی که وردن واضح بود که دروغه ولی اینجا نه اینجا قرینه هایی که وردن درسته ولی که بوجه که درسته برای یعقوب سخته باور بکنه چون اصل در اینها دروغ گفتن خیانته سلب اعتماد شدن یک دروغ یک بار اشتباه سلب اعتماد میشین اینا دیگه اعتماد خودشون از دست دادن پیامبر الهی نمیتونه اینا را باور بکنه نمیتونه اینا را باور بکنه هرچند که راست میگن و ان الله صادقون بعضی هست که الله پیامبرانش رها میکنه که خودشون اجتهاد بکنن و بعد الله یا اینکه تاییدشون میکنه یا اینکه مثل قضیه که برای رسول الله صلی الله علیه و پیش اومد در بحث اسیر گرفتن و ماکن نبی ان له اسرى حتى يثخن في الأرض. أسير گرفتن اجتهاد کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم مشورت گرفت از اصحاب و این رای رو گرفت که ما اسیر بگیریم در یکی از جنگا ها نبرد ها با مشرکی جایی الله فرصت را میده برای اجتهاد ولی اگر اجتهاد اشتباه باشه الله اصلاحش میکنه ساکت نمیشه ما بالاخره داریم در قرآن وقتی که الله میگه ابس و تولا جاه الاعمى چهرهشو در هم کشید وقتی که نابینا اومد نابینا هم ندید ولی با این وجود الله میخواد اسلاح بکنه اینم نمیپذیرن اس پیامبرمون جاهای فرصت بهشون میده با توجه به علومی که دارن این پیامبر امتحان بشه چطور اجتهاد میکنه در اون قضیه اینجا یعقوب علیه السلام اینجنین اجتهاد میکنه بر هاش با وجود که دارن درست میگن ولی باورشون نمیکنه قال بل سولت لكم انفسكم امرائین بازم یک دسیدیگر دیگر ای دیگری هست که خودتون درست کردید و چیلید بل سولت لکم انفسکم این هوای نفس خودتونه نفس اماره خودتونه این توته ای خودتونه فصبر جمیل برای وارد دوم فصبر جمیل در مقابل مصیبت بعدی فصبر جمیل هر مصیبتی ما فصبر جمیل عسى الله ان یاتیانی بهم جميعا اصلا هنوز امیدت ندارید از الله الله, الله شاید همشون رو به من برگردون همشون دو تا یا سه تا یوسف بنیامین برادر بزرگتر که گفت من میشینم تا پدرم حک بکنه این یکی هم دیگه بخاطر همین الله جم بس کلمات الله دقیقه ها دیگه از اون واقع نقل میعسى الله یاتی یعنی بهم بهم نگفت گفت بهیما بهما میشه دو نفر بهیمش یه نفر بهما میشه دو نفر بهم میشه سه نفر و بیشتر جمع الله همهشون بر می‌گردونه یعنی هم سنفره نفرشون ان هو العلیم والحکیم الله حکیب میدونه ما نمیدونم علیم الله و حکیمه مهش حتما انکارش یک حکمتی توش است مصیبت مصیبت زده است با این وجود از حکمت الهی میبینه این مصیبت این حکمت را از مصیبت مصیبتایی که از قالب امتحان بر خلقش الله بهشون دوچار میکنه دنیا دنیای امتحانه قاعده دنیاست هم حسبتم ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستم الباسا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين همن معه متى الله اگر دنبال راحت تلبی در دنیا که راحت بخورید بیا شامید ایشونوش بکنید بهش با این سادگی به دست نمیاد الا ان سلعه الله غاليه بهشت الله سخت سنگینه خیلی براش تلاش میخواد چنانچه رسول اساس تلاش میکرد براش با جهادش با صدقهش با ایستادن بر تهجدش نصف شب می ایستاد نصف شب من 6 ساعت می ایستاد به تهجد خوندن خیلی از اون روزه دوشنبه پنجشنبه وسط ماهش روزه هاش نه الگو هست که ما بعد الگو بی با سختی نبا سستی باید سختی بکشیم فکر نکنیم که بهشت سادگی به دست میاد الانه سلعت الله غالی کالای الله که بهشت گرونه هم حسبتومن تدخل الجنه و لما مثل مثلالدین خلو من قبلیکم مستتم البعثه والداره من منیشستم ریشان میزدم قمیز شوال میپوشیدم کسی با من کار داشت نه دو تا آیه میخونم هزار نفر با من کار داره دوست رفیر همه کار دارم باز همه هم دارن چون تو حرف میزنی بواد سخنگوی اونا باشی امتحان، ابتلا، مصیبت، پشت مصیبت دیگه فکر دیدم اینطوری مفتی کشکیه کشکی بهشت اینطوری به دست میاد می هستم این زحمتا نبودن این خصیگی ها و این استرس ها و این فتنه ها و این مصیبت ها نبود علا این ان سلعه الله غالیه باید زحمت بکشه آدم باید سینه رو سپر بکنده و بدون که اگر اینجا خسته میشه راحتی خواهد داشت که خواهد آمد الله همه رو در قبرمون راحت بکنه و همچنین در آخرت رو سفیدمون قرار بده از ما راضی باشه و خوشنود باشه و به ما ترسی بده که نزدیک گناهانش نشین و را در دل ما و در دل فرزندان ما قرار بده از ما راضی و خوشنود باشه و بهشت فردوس علا را نسیب کنه و لیاقت هم صحبتی پیامبران و صدیقین و صلحا و شهدا قرار بده و ما را از لذت نگاه به خودش محروم نسازه و الله علی محمد و علی محمد